یون ولیله یک اصطلاحی بیده در اون زمان برای کتاب هایی که به اصطلاح اینوز ما رساله های عملیه می نوشتن عملی. من یه توضیح رو از کردم که از تقریبا اوائل زمان هزار رزا سامان از سال های این فکر در بین اصحاب ما ایجاد شد که به اصطلاح کتاب هایی رو بیریسن شبیه اینی که الان اخیران بشه این فخور مشتمل بر احکام باشه و مجرد روایات به ساتوش نظر نداره ما به هموندار کتاب کمالالی بشه ما کتاب های قدیمی که در این جرت میشنستیم هیچ کتاب همین یوم و لیله هست که یونوسف نبدرحمن بسا تعلیف کرده باشه البته چون کتاب الان در اختیار ما نیست یه احتمال بودیم شبیه فقور بوده که اصولا این فقور رضا از مجموعه این کتاب های این قبیلی جمع‌آوری شده خود کتاب فیقورزام شبیه کتاب یونگر لیله بود احتمال هم داره شبیه کتاب های حسین سعید بوده که همون عمل یونگر لیله در شده اما سند رو آورده باشه ما هست یه مرحله ای در اصحاب ما هست که پس که رواست سلاف رو از مسادر مختلف رواست مختلف در یک جا جه هم کردن مال رکوعش یک جسد به اصلا تصنیف یا تبهیب کردن یه مرحله اینه که دیگه سنده ها را هست که اولا متون روایات و فتوه را آورده این یوم و یونس یونوس خیلی الان برای ما روشن نیست الازی علفه و یونوس ابن عبدالرحمن علا عبدالحسن العسکری امام حادی علیه السلام فنر و رفیح و تا صفحه کله قراطم باید همون ابو هاشن جنفری باشه چون جز خواست در اصابه اون مقال دینی و دین و آبایی و حوال حق و کلو این کاملا دیگه درسته این مطلب مطلب خوبی اما از کردن من کران از کردن استدلال این عبتی روایات روایاتی که ایشون در کتاب معین به اصطلاف ما شبیه قضیه خارجیه نمیشه نیموشه این تمثل کرد برای خود جده خبروارد این یک دو این که خود کتاب یونوس با این تأکیدی که امام فردم خودش در قوم محل کلام بوده حالا قبل به ما کتاب یونوس نرسیده چون کتاب یونوس نسخ مختلف داشته یه عبارتی داره ابن الولید میگه کتاب یونوس بن عبد الرحمن اللتیهیه به روایات مراد از روایات در اینجا نسخه نسخه های متعددی از کتاب یونس ابن بوده کلها صحیحه ی اعتمد و علیه ها الا تر دویهی محمد ابن ایسا اونی که محمد ابن ایسا منفردن نقل کرده قابل اعتماد نیست خب دقت دقیقه با این همه تجلیری که از مثل یونس ابن شده خود کتابیشون هم الان محل کلام چرا کتاب دیگه کردیم اصل وجودشون بهشون پیش ما مشکوکه کرده مضافن که خود کتابیشون هم به ما نرسیده، البته اونی که الان ما داریم از آثاریون سبنه بیشترش توسط محمد ابن ایسا است این درست خلاف این کلام و قومی ها شواهد ما حاکی است که بقداری ها رو نسخه محمد بن ایسا بیشتر اعتماد کردن تا نسخ دیگر میکن مرحوم ابن الوری به عکسه اعتمادش بر نسخ دیگر بیشتر تا نسخه محمد بن ایسا حالا یه در این روایت داره که عبدالعا چه اثر جه افرالی این دو باید این چوری. حالا اگر ما این قبول کردن بعد یه وحد دستانی باز خود مرموم آقای شیخ کشی ابراهیم ابن مختار ابن به اسطلاح ابراهیم این تو نوشته ابراهیم ابن مختار ابن محمد ابن عباس این شور اینجور نره کرد ان علیه بن حسن ابن فضار ان عبی بله ان عبی جعفر یک علیه السلام هم داره مثله دیگه معلوم میشه به هر حال دو نصفه ای که در اختیار مردم کشی بوده چون دیگه ظاهرم باید این طور باشده. تا اینجا دو نصفه در اختیار کشی هر روش ابو جعفر بوده خیلی عجیب این باید عبی حاشم باشه چی شده یه علیه السلام هم بشنه بشته بشن. این علیه السلام که قطعاً باطله. چون امام مراد اینجا نیست، ابی جعفر و خیلی علایق حاضر قصه غریبیه اینا عجیب این ابراهیم ابن مختار ابن محمد ابن العباس نمیگم حالا چون به هر حال ما فعلا اینو مال منطقه خودتل بوده خوتقل و هم منطقه طرفی سمرقند و کاش و اونجاها بوده در کتاب مرحوم شیخ ابراهیم ابن محمد ابن عباس آمده و چون شیخ نجا شیخ هم شیخ هم از کشی گرفته احتمالا نسخ کتاب کشی در زبط این کلمه مختلف باشه به ارحال ایشون داره کان رجلن سالح هم و مرمون شیخ میگه که این آقا یربی ابن پسر از ابن فضل پسر یربی این ظاهره نظرش به این کتاب کشیه. هست یربی یعنی علی ابن حسن ابن عن ما سابقا از کردیم اونی که الان ما در کتب داریم خیلی شازش خارج از این قاعده است علی ابن حسن از پدرش نقل نمی کنه. چون ابن فضال معروف که حتی گفته شده که از فتحیت هم خارج شده حسن ابن علی پدر ابن فضال پدر اسمش حسنه حسن ابن علی ابن فضال ستا پسر داره محمد و احمد و علی اونی که الان در میان اینها از هر معروف سر ستا پسر علیه علی ابن حسن علی میگه من وقتی کتاب های پدرم شیندن عمرم زیر هیچه سال بود دو مرتبه کتاب ها رو عرضه داشتم بر برزرانم از پدرم لذا در معظم روایاتی که ما داریم ازا یک مورزی که محل اشکاله نیمخواب بحث طبقات روایت ارم فضال بشن اینجا منعبیه مباشرتن این نیست آدتن این درست نیست حالا یا در کتاب کشی سقط شده یا در ناصه اصلی سقط شده. باید باشه عن اخوی عن ابیه ما. انا ابیه. اینطور باشه علی بن حسن فزار شون میگه عمرم کوچیک بود من از فضل نقل نمی کنم شنیدم اما به و نسبت نمیذارم تهذیص نمی کنم. انا علی بن حسن فزار ابن فضل فضال فسر ان تعبیه عن ابی جعفر علیه السلام عبی جعفر رو کرد کرده مثلا امام, امام جواد امام جواده نه این عبی جعفر همه ابو جعفر بالاست که از کردیم در نسخه دیگری که داریم عبی هاشمه حالا در دو نسخه ای که از خراسان رسیده عبی جعفر آمده یه احتمال هم داره که مثلا یه کسی دیگری بوده مثلا این احتمال داره اما اونی که ما داریم که از ابی حاشمه حال احتمال هم داره که عبی جعفر یقین بکنیم که عبی جعفر که ما تا دیروز میگفتیم احتمال داره که عبی جعفر جعفری نامی بوده یا ابی جعفر که چیزی حضب شده مثلا احتمال داره باز مرحوم کشی این حدیث رو به اینه نقل کرده البته اونجا از حضرت حادی بود ان جعفر ابن معروف که حالا این ما یه جعفر معروف دیگه هم داریم گویا اشتباه میشه این جعفر معروفی است که همون جاست مال کش و سمرقند روشن هم نیست برای ما یا ایشون مستقیما کشی شاگرد ایشونه یا ایشون ایاشی به اصطلاح تو استاد عیاشی است عیاشی به طرز قش نرم میکنه من چون یه بحثی راجع به خرابیای کتاب کشی از به همون اشاره کردم قال حدثني سهل بن الهور الان خیلی تشخیص درست می‌می‌دیم سهل بن الهر باشه یا بهر باشه حدثني فضل بن شازان خود کشی از فرانت توسط ابن قتیبه از فضل نقل می‌کنه اینجا با این وس... وس... وس... وسیله عجیب از فضل شازان قال حدثني ابي الخليل نه ابي عب الخليل ابي الخليل الملقب بشازان پدر مرحوم فضل نشازان که به اصطلاح اسم شازانه ایشون هم جز رواته و جزه اصحاب ابی جعفر هم هست قال حدسن احمد ابن ابی خلف ان ابی جعفر علیه السلام اینجا اینجوری آمده احمد ابن ابی خلف ان ابی جعفر علیه السلام این احمد ابن ابی خلف رو الان آن نمی این ابی جعفر در نسخه قبلی ابی جعفر جعفری بود اما اینجا امام جواده بله در بعضی از نسخ اینجور آمده احمد بله احمد ابن ابی خلف ان احمد ابن ابی جعفر زعر ابی جعفر علیه السلام ز ر ب ظ ض یعنی به اصطلاح کسی که دایه و سرپرستی او بشه ان احمد ابن ابی جعفر زعر ابی جعفر علیه السلام نه احمد بن ابي خلف ز نه داره بعضی از نسخ این چه من بنویسم در واقع احتمال هم داره این این اسم دیگری است چون از امام دیگریه ما الان تطبیقش نمیتونیم بکنیم احمد بن ابي خلف یا احمد بن ابي جعفر ز ابي جعفر شاید همون عبا جعفر و جعفری همینطور بوده شاید نبید اون نسخه هم در اینجا شاید این طور بوده اما اون چون توش داود ابن قاسم داره داود ابن القاسم عبا حاشم جعفریه اون تکیه واضحه که اونجا فرابی زیاده الان یه حالا سه تا نسخه ایشون نقل کرده که متاسفانه الان امر حس نسخه حس سه سند مشکل داره قال حدثني احمد بن ابي خلف ذعر ابي جعفر اصلا قال كنت مريضه فدخل علي ابو جعفر عليه السلام این پس اگر باشه نباید ان ابي جعفر عليه السلام باشه ان احمد ابن عبی خلف ذعر ابي جعفر قال کنتو مريضه از کدم اینشوال مت در این دو درسه 4 5 تا حدیث مثلا 5 تا حدیث بیشتر است که نمی خونید توش تقریباً سالم سالم کم در آمده. یک جایش خرابی داره یعودونی اند مرضی فیضا اند رأسی کتاب و یوم و لیله فجعل اینجا یوسفه خونه شیست فهو خو ورقه او ورقهو یا ورقتن ورقه حتی اتا عليه من اولیه الى آخره فجعل یقول اینجا نبود کتاب و یوم و لیله کی به قرینه زید رحمه الله و یونس رحمه الله و یونس رحمه الله و یونس حضرت عبی جعفر سلام الله علیه این طرفه بوده پس ایشون از یک جا از امام حادی نهار کرده خود کشی یک جا هم از امام جواب راجع به کتاب یومولیله یونس مرحوم نجاشی در زیل ترجمه یونس بن عزرحمن على خلاف قاعدتی هی حدیثی نقل میکنه چون کتاب نجاشی مال حدیث م... چون در اون زمان در قم و آتار یونس خیلی حساسیت نشون میدادن قبول قبوله کردن، ایشون برای این که رد کلمات قومی ها بکنه ایشون میگه در دفاع از آر بعض یونس یونوس این حدیث رو ایشون در کتابش میاده قاد شیخون عبا عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان محمد شیخ مفید قدس الله و سره فی کتابی هی نور من یه دفعی هم توضیحاتش ارز کردم کتاب مسابیه نور الان در اختیار ما نیست اونچه چه که از این کساب راسته هم یه حدیثیست که برام نجاشی اردو ظاهرا مساوی و نور رو نجاشی در وقتی نوشته که معتقد بوده مثلا مرموم شیف و مفید در وقتی نوشته که معتقد بوده ماه رمزان دائمان تامه از کردیم در قرن چهارم یه دعوای نسبتا شدیدی مثلا این زمان ما که که به تلسکوب و اینو مثلا این صحیح به هیلال راجب ماه رمضان بین اصحاب در میگیره که ابن اوله او شی را صدقدم شی مفیدی در دستبندی تندی میشه در اینکه ماه رمضان تمام تمامه شیخ مفید البته در نسخه رساله ای به با و نور در اثبات هم مطلب که ماه رمضان دائما سیpore بعد شیخ مفید بر میگذره حتی برای ایده تعجب میشه من جمله از موسی دلیلشان سوال میکنند که آیا شما برگشتیشون که بله من از اون رای برگشتیم ماه همیزا مثل برقیه ماه هست سی پرو سی... سی... ناقص و پرو میشه با دو مرتبه سآل بکنیم رساله دیگری جواب میده با قول مردم زیادیشون جوابات اهل الموسر از در باب به اصطلاح عدد و این رساله دوم در قرن 11 هم تقریبا توسط نقه یا پسر صاحب معالم ایشون داشته از این با قول در شروف طرف بوده نسخه خطی اینو رو برن در کتابه منصور میاره کامل این است که الان چاپ شده بعضها مرحوم شیخ نوری هم به عنوان رسالت عددی ازش این رساله عددیه اینه رساله است که مرحوم شیخ مفید برمیگرده از رأی اول خودش البته بعضی ها معتقد بودن که این رأی اولش که ماه دائما دائمان پره. این مثلا مال اوائل جوانی بوده بعد کتاب ابو ریحان بیرونی چون ابو خب واقعا انصافه که از مرزهای قابل اعتبال در دنیا اسلامی کتاب که داره خیلی کتاب های نفیسیه مرز واقعا مله درشته خودش و چقدر هم در این بسمت معدبانه صحبت کرده شد به انفقه ها اشیه توی آثار باقیه انو قرون الخالی در اون بحث روزه متحدث شمید اواز باز از سوال شیعه به امام سادر که ایشون فرمیدن محرمزا هم دائما پر پره بعد این اشتباه علماس علماشی اشتباه کردن چون جعفر به محمد عجل الله تعالی از این مح... خیلی عجیب عجیبه امام صادق به میکنه میگه سنی میگه شان امام صادق عجل الله مطلب مخفی بمونه با بین مثلا مسلمه که محرمزا میسه بقیه ماحصل کم زیاد میشه این علمای اشتباه کردن خیلی, خیلی نکته لطیفیه این علمانی شیه اشتباه کردن چین چیزی رو به امام صادق نسبت دادن نرزم این که میگن بعد شیخ مفید برگشت به هر حال اگر هم این نکته در برمند چون دقیقا تاریخیش رو هم مطابقه نکردن دیدم در سال سابر باقیگرن این خالی است. عبارت ایشان تیجا شاید پیزام نر بکردن اما چون تاریخ تأثیر و تأثیر رو نمیدونم اون چه که در این مساله مسلمه شیخ توصی به شدت این روایات ادله رو ادله رو رد میکنه. توی تنزیب رد میکنه. من چند بار عرض کردم شیخ طوسی بحثهای فهرستی، بحثهای نسخه نگاری کم داره. خیلی. یکیش اینجا داره. اصلا میگه این روات در اون کتاب که بین آوانسانی در نسخه مشهوری کتاب نیست در نسخه اون نقل کرد این در کتاب شیخ طوسی کم به نظر من اونی که موثر بود در شیعه. که هم این نظام تمام بشه و هم مبنای شیعه این بشه که ماه رمضان کبلیت شهود شیخ طوسی در حیرت قبل از شیخ توسی شیخ مفیل هم هست اجازه خودت را شیخ مفیل دو جور کتاب داره یک کتاب داره که اثبات کرده ماه رمضان دائما پر سیفوره اینها این مساوی و نوره یه دو تا کتاب داره یه دو تا رساله داره که ماه رمضان کبلیت این همین نیست که اور خیلیام تو اجال میترنه خیلی زوران بذکرام شیخ توت مفید رسالات عددی اسم کتاب رساله عددی نیست این کار رو مرحوم خدا رحمتش کنه مرحوم صاب مستزک مرحوم حاجی نوری اسمش رسالات الضیه بودش اسم کتاب جوابات اهل الموصل اثانیه این چاپ شده اخیرا تو آثار شیخ مفید چاپ شده شون نسخش موجوده دیگه نسخش هم اذکران منحصرا در اختیار مرحوم پس سر یا نظر پسری پسر از عبدالصیر صاحب معالم محمد بن حسن کتاب در الدر المنصور این چاپ نبود 30 40 سال قبل منشی قد از در صاحبخانه مجموعه علمی قدس الله و سلسله چاپ شده ایشون در اونجا آورده از اونجا بعد دیگه منتشر شد تو خود ایشون میگه نسخه خیلی عتیق است و در شوف از بین رفتن است و یکی شان حتی احتمال آثار سید مرتضی باشه در حال دو تا نسخه اصلی صاحب نوی این صاحب نوی رو ایشون هم به شهامتوفی نسبت میده رده بر شیخ صدو اگر این رساله مال شیخ صدو مفید باشه خیلی عبارات تندی بیراجه به اصطال شیخ صدو داره که مناسب نیست انصافا به ام بین الله خیلی حالا شیخ مفید اون کتاب فسیول اعتقادم تون میشه به شیخ ابو جفر به قول خوده تو این رساله صحبان نبی خیلی تنده به فوق العاده انصافا تعاویری که مناسب نیست معروض شیخ صدوق بزرگان اصحاب فقیه که قدر داره مکتب فکریه مشخصی است این تعابیر راجبیشون به کار بردن خیلی انصافا یعنی انصافا خیلی درست نیست و مناسب با شان مقام شیخ مفید و هر دو با شیخ صدو هم نیست الان این دو تاره ساله را مرحوم دورالمسعود آورده دکتر دورالمسعود مفهوم محمد بن حسن الحر العاملی میمها از شیخ نبی شیخ و بعدها اسم شده عرصات رو از یک آی خویه هم یه مقدار توصیقات رو از همین رساله عددیه ذکر میکنن مذکره و شیخ المفید به رساله و البته این حالا ای کتاب واقعا مال شیخ المفید با چون میگم این از قرن 11 ادعا شده به قرن اوال قرن 5 هم هم نداره میگه دو نسخه خرکیس پیش من من کرده. اگر راست باشه خود کتاب رساله عددیه هم داره. ما این به مناسبتی هم مناسبت متعرسیم شیخ مفید و مبانی رجالیش اصلا تو همین کتاب یک جا نقل میکنه که محمد انسان ضعیف شد، یک صفحه نمیشه یک صفحه این بعد مثل گهز من اجلال از و صحاب و خلان از این اخیران هم خیلی برای ما تحییر این کتابیشون. به هر حال مرحوم شیخ نجاشی از شیخ مفید در این کتاب مسابیح و نور که خیلی به دست ما نرسیده. اخبرن شیخ و صدوق ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه معروف صاحب کامل زیارات که واقعا شیخ بسیار بزرگوار است قال حدثنا علی بن حسین بن باوی صدوق پدره علی بن حسین بن باوی این در واقعه کلانی است البته ما بیشتر روایاتی که مرحوم شیخ مفید یا دیگران از در اجازات و در اسانید از مرحوم ابن قلبک نقل میکنن از کلهینی چون ایشون شاگرد هم هست از کلام ابن قلبک به خر یعبر محمد اساساً قومیز بعدها ساکن بغداد شد و قبرش هم در حرم کازمه سلام الله علیهم قال حدثنا علی ابن حسین باوی لذا ایشون با اینکه ما الان رو بغدادی میدونیم از مشایخ قوم نقل میکنه سرچینه اثر قوم بوده بعد بغداد آمده این سر نقل از مشایخ قوم مال اینجاست قال حدثانا عبدالله ابن جعفر الحمیری هم از مشاهق قومه قال قال لنا ابو هاشم داود ابن قاسم جعفری انصافاً این یک و دو و سه تا سند در کتاب کشتی آمده هیچ کدومش به روشنی این سند مردم نجاشی نیست شیخ مفید نیست. نه توش تصحیفی هست نه توش تحریفی هست نه توش مشکلی هست اون سه تا سند هر سه مشکل داره و این سند واحد قیم سریحه که قال لنا ابو هاشه معلوم میشه حکارت شفاهی هم بوده از کتابش نقل نکرده این دقتهاییست که همیری داشته من ارز کلم کردم بزرگان محدثین اون زمان که سانده بودن که ضوابط تحریص رو کاملا به کار میبردن به اصطلاحی بود روز استانداردهای علمی بعد تازه میگه قال رحمالله عرصت و علا عبی محمد در اونجا در دو نسخه امام حادی بود در یک نسخه امام جواد بود مرمون شیخ بحیب چون از اونجا امام عسکری هستن نه امام جواد نه امام حادی عرصت و علا محمد مراد بردی محمد امام عسکری نه امام جواد نه امام حادی دخلی کنی چند کرد؟ مطال این که مناسا میدیم کتاب کشی خیلی در بزاق مونه مال همینه یک مطلب واحد سند هم سه تا سناد آورده، هم سناد دارن همون امام اخیر هم، یکی ج... دو تا جامعه هادی، یکی جامعه جواب. ام. خیلی بی بده. اون داود ابن که امید داوود در ناقاسم داشت تو سند اولیش. اون در خری همیشه مردمان آنهاش رو می‌دیدی. نه اون داوود در ناقاسم که تو سناد اولیشون بود، که تو اولیشون داوود در ناقاسم. Allah ایا حاله؟ در هر حال ارست و علا محمد صاحب الاسکر کتاب یوم و لیله و یونوس و قاللی تصمیف و من هادا این کلمه تصمیف خوب دقت بکنید این معید همونه که این کتاب خیلی چون بگم مرحوم همیری فوق است ها خیلی واقعا از شخصیت های بسیار بسیار بزرگ قومه من یه وقتی هم صحبت کردم مرحوم چیز نجاشی میگه در وقت وارد کوفه شد در سال 297 خورده ای این در کتاب رساله عبیقالب زراری 297 نوشته خیلی عجیبی 297 مرحوم عبدالله مجرطر همیاری وارد کوفه میشه و تحدیس میکنه و بزرگان از اون مینویسن فعکسر اصلا زیاد مینویسن حالا ما میدونیم که عبدالله مجرطر همیری مؤزم آثارش مال خود کوفه است. حالی برای آره ما تحجیبا برای آثار خود کوفه رو دو کوفه کوف باز خود مشارق کوفه از اشون نوشتن این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینقدر این آثار سعیه از اون آثاری که پیشه خودشون را سعیه خودشون مردن اون آثار هستن کوفه خودشون مردن آثاره خیلی عظمت علمی همیاری به نظر من از اینجا روشن رو میشه که آثار کوفه رو بیاره کوفه و باز کوفی ها از ایتون بریبیدن این معنیش اینه که کاملا مردی و این صاحباً این جامعه همینطوره داریم الان ما میبینیم ببینید قاللی تصمیف تصنیف من که مصنف در اون زمان اسطلاحاً این بود که هر اسطلاح مثلا کتاب و صلاطی یک جا بیارن صبح میگیرون اسطلاح باز مثلا زر، افتتاح، رکوع، سجود اینه تصنیف میگفتن اصطلاح مصنف اینه روایات رو دستبندی کرده ببینید قاللی تصمیف تصنیف من حالا این مشعر است این که کتاب یوم و لیله مثل کتاب های حسین سعید با روایت کامل آورده. سماج قرار کرده سنه صفر مثلا سالات سوم کرده بعد در سالات اون که مربوط به تکبیر الاحراق مثل کتاب فقه الرزا میتون اول وقت اشاره کردم کتاب فقه الرزا متون رو روایت کرده قلت و تصنیف یونس آل یعقوب این البته نمی توی نجاشی اینجا این نسخه غلط داشته تصنیف یونس آل یعقوب معنا نداره تصمیف و یونس مولا آلیختین بله ایشون از موالی یختینه. اگر کتاب نجاشی تو این کامپیوتر هست نگاهتم بله بله باید مولا باشه مولاش افتاده این درست این عباره تصمیف و یونس مولا آلیختین فقال اعتاه الله به کل حرف نورن یا مزیان مزمون اینجا بهتر از اون بالایی خیلی لکیفه اعتاه الله این این اکاس و جزای عمل ایشون و آثار علمی ایشون اعطاه الله به کل حرفه نورنی و مزیانه. حالا ببینید سه تا روایت کشی رو که این وقت اون بر خراسان آخر الان میگم صغرا آخر خراسان این چرا این سه تا رو مقایسه بکنید با, با یک روایت حسابی درستی که شیخ مفتی قدس الله نفسه از صدو و برمیگرده به یکی از بزرگان اجلای اصحاب که مرحوم همیاری باشه متنش سندش کیفیت تعابیرش تماما سالم و بدون یک ذره به اصطلاح خرابیه این همون نکته است که ما در حدیث شناسی دائما روش تاکید میکنیم یه علاوه صحبت زیاد شد کفایت میکنه کنم که باز دو مرتبه سعد ابن جناح البته سعید ابن جناح هم ورثه دارن نمیشناسید الکشی از مشایخ ایشان که در کش بودن سمعه چون محمد ابن ابراهیم ولوراق سمرقندی ولی من یه مناسبتی صحبت کنم وراق ها در اون زمان الان در وراق وراق غالبا به صحافی ها میگن کسی که صحافی وراغ در اون زمان عرض کن به انتشاراتی ها میگفتن غالبا وراق ها کسانی بودند که مثلا کتاب ها رو استنساخ میکردن میفروختن بعضی ها مثلا تمکن مالی بیشتری داشتن ده نفر رو اجیر میکردن خودش کتاب رو میخوند ده نفر یک زمان می نوشتند بیشتر در بعضی 200 نفر 300 نفر 500 نفر وقتی یکی کتاب مخوند 500 نصفه ازش تکثیر میشد براغ ها اجمالا خوبه دخششون خوبه اما ما خود ما احتمال میدیم بعضی از این کتاب ها که مثلا آثار درستی نداشته باشه به توسط این براغ ها جل شده باشه یعنی براغ ها پخشش یردن جل نه ببینید دقیقه بکنم وقتی میگم کتاب مجعوله لازم نیست که این ورار جائلش باشه چون این ورار انتشاراتی اعتراض یکی که ادم مثلا خوبی میاد بهش میگه کتاب این کتابی اسماله فلسفه مثلا آیت الله ورجدی ایشام که علی هر کاری نیست کتاب و فلان تعریف از آیت الله ورجدی مثلا اون با وسات نه اینکه دروغ گفته دروغ نگفته به مقدار معلوماتش همینه به خاطر می کنیم این حالا انشالله شاء الله به این مطلب بعد از از نوشتدارهایی که به نظر ما توسط و راهها بین جامعشی رواج پیدا کرده اینش رو وقتی صحبت میکن. قال خرش و یغول و خرش بههشت تو, تو ان اما ر آارتجل منن کا منه از خوابنا معروف به صدق و صلاحول و و خیلی این ت اضه خوب بکشید که هم کلی روشندی یا قال گو بورقل بوسنجانی اینجا بوسنجه اون به نظر بوشجانی چاپ شده باشه نیست. بوشنج از دهات هراته قریه تون من قره هم نوشته اما اینجا بوشنج نوشته بوشنج تو ذهن من بوشنجه و ازورهو و احدث و بهی اهدی بله این ازورهو که نزن به نصفش نیست فعرد تا ان امره بله به تو ذهن هم بوده سالا که نصف و ازورهو اون امره افس بر امره و احدث بیه اهدی بله. آلف عطی تو فجراز اکر فضل ابن شازان رحمه الله فقال بورن معلوم میشه که این داستانی رو که این آقای برراغ نقل کرده برمیگرده بعد از سالهای دویست شست چون مرموم فضل ابن شازان متوفای دویست شست به اصطلاح ما برمیگرده به دوران قیمت سغرا چون مرموم فضل ابن شازان یکی دو ماه حالا دقیقا نمیدونیم قبل از ماه ما اسکری وفاتشونه یعنی فضل شازان قبل از دوران غیبت و کبرا بی یک ماه دوان وفاتی ایشونه فقال بورق کان الفضلو بورق بوشنجانی حالا ایشون ملحرات بوده چطور به نشابون شده بیشون داشته به بی بطن و بطن، این شکم روش رو میگن اصحال شدید لئله. حالا لئله شدیدن بوده محتلا بی یک شکم روش شدید بوده و یختلف و فلیل در یک روایت داره که مثلا دنبال شیعیان بودن مال تاهره که مال اون مال, مال که و به دنبال فرس فرس فرای کرده بود جایی تنهان شده بود این حالت از ترس دارش پیدا شده و یختلف و فلیل معت مره الى معت و خمسین مره یختلف و رفت آمد مورد کنایه به توالد نجله کنه خب این معلوم میشه خیلی اسهال عفونی شدیدی بود حالا یا عفونی بوده یا عصبی بوده چون دورادور کلیم شوک میگه اما خیلی باید شدید باشه که 7 تا 150 بار در یک فاصله مثلا فاصله 8 ساعت 10 ساعته مبتلا بشه به رفتن به تخلیه فقال لهو بورخ خراش و بله هاجن رفتن به طرف حج فعتي تو فقال لهو بورق بورق به این آقای براغ میگه فعتی تو محمد ابن ایسل عبیدی بغداد منوشی در بغداد خدمت این مرموم عبیدی محمد ابن ایسا فرعی تو شیخن فازلن فی انفیه و جا شون دماغش نزد برامدگی داشت این رو اصطلاحای قناه میگن یکی اصطلاحای قناه میگن یکی اصطلاحای از, از میدیم اینه که اقنال انف اقنال این برامدگی که برامدگی بینی باشه اصطلاحاً خناه میگن و مرد را اقناق و معهو عبدتون گروهی از شیعه هم با ایشان نشسته بودن با مرحوم عبدی ورعی تو هم مقتمین محضونی فقلتو لهم مالکن چطونه قالو این عبا محمد علیه قد غبست این ما مابین 255 تا 260 باشه چون مدت امامت امام حسکری صاحب الله علیه عبا محمد به اصطلاح مابین 255 تا 266 فقال این عبا محمد علیه از آن قطعه قال بورق فهجشتو حج رفتم و رجع سویلا بغداس و مهتی تو محمد ابن ایسا و وجد تو قد انجلا انهما کنت تو البته که عربیش معلومه چیمون هم اون طرف را آخر را که میخواد تو و وجد تو قد انجلا ما کنت رعی فقلتو مل خبر چه خبریه فقال قد خلیه هم حضرت عسکری آزاد شده قال بورق سخرش تو الاس سر من را وقتی فهمیدم که حضرت دیگه رفت آمد خدمت ایشان مشکل نداره از بغزاد رفتم خدمت ایشان و من ای کتاب و یوم و لیله بورق گفته بورق بش... بوچنجانی فدخل تا علا عبی محمد این همون قصه نجاشی رو تایید میکنه که صاحب قصه حضرت بله، امام اسکری بوده. و ارهای تو او ظال کتاب ظاهرم مورد همون اسم. فقول تو لحظ و ال تو فدا اینی ری تو انتن ظال فیمثل فلما نظر فیح و ت صففه بود ورقت هم رقت این یکیشون مثلن بهتر هادا فقالا حاض صحیح ها یم بقی نی اومله حدیث. هر کل مورد از در اینجا حجه. نه مطابقت با واقع اله حالا این هم یکی از روایات به اصطلاح که در باب بازی یونس بن عبد الرحمنه بله بله در بفضل بود با این بود مرذو به فضل باشه این کتاب این عبارت مرذو به فضل من اشتباه که گفتم راجع بیونس. چون این رو دو مرحله و در کشی داره محمد ابن حسین ابن محمد الحربی که نمیشت دستیم ان حامد ابن محمد العزدی البوشنجی که ان الملقب بفورا من اهل بوزجان من نیشابور اینا توان نمیشت ان ابا محمد الفضلیم شازن رحمه الله کادم وجهه العراق الهی سبیه ابو محمد ال حسن ابن علی صلوات الله علیه ما فضه کرده این, این قسط را از بوزجانی نرمی کنه دخل علا عبیق محمد علیه السلام امام حسکری فلا معراده هم یک روز سقط منه کتابون فی حسنهی ملفوفون فی ردائه این کتابی رو توی عواش بسته بود فتناوله و محمد علیه السلام نرارفی و کانال کتاب من تصنیف الفضل ابن شازان فتره همه علیه اون بعد علی دوباره چی داره اون فون عریض بعدی هم داره حضرت نگاه کردن گفتن خوب فهمیدن رحم الله و تعالی ایشون میگه من تعجب کردم ما فهمیدیم حضرت خزر زنده بود چرا حضرتان رحم الله و تعالی او حضرت در سامرا بعد کاما فهمیدیم همون وقتی که حضرت فرمودن ایشون فوت کرده بودن این فتره حمعه علی یک مقدارش هم به خاطر بیان یکی از معجزات حضرت اشعری و ذکر ان و ذکر انه قال این ذکر اگر بخونیم همین شخص بوزجانی و ذکر هم احتمال داره انه قال این عبارتی که ما در فریدون به مناسبتی گفتیم فطر از که به فضل فرموده این این بسترش اینه و اهل خراسان به مکان فضل نشازان و کونه بین ازهرهم من قصه می با حال اهل خراسان که مثل خذ در میان اونهاست خب این خیلی از من هم بالاتره علایه به مکان مکان در اینجا به قول آهی میمیه من هم نزده و به کونی مثل همون کونی هم این هم حدیث دیگری بود از کتاب کشی که باز هم ابحام های به لحاظی چیز خب اجمالا در جلالت شنه فرض رحمه الله هیچ جای بحثی نیست و باز در کتاب کشی من سریعا نکی دوست حدیث بخوام بخواهم چون دیگه بله تمام میشه این دوست حدیث باز در کتاب کشی حدستانی محمد بدن حسن این احتمالاً برانی چاپ شده براسی چاپ شده احتمالاً براسی باشه که از براسا باشه آل حدست حسن حسنان علی ابن کیسان من اصحاق ابن ابراهیم ابن عمر الیمانی انا ابن عزينه انا ابان ابن ابي عياش حالا اینشون بحث کتاب سلی، سلیمه بن قیس خود سندش و خود شخصیتش بش هرچند خارج پیش این هذه نسخه کل کتاب سلیمه بن قیس ال عامری ثم الهلادی رو میشون بحث خیلی زیاده دیگه جاش اینجا نیست رفعه الى ابان ابن عياش و قرعه عبارات ایشون مشکل داره باید به نس شناسی کتاب سیم با بحثه خاصی بشم دیگر اینجا و زم عان نه قرارعل علیبدن حسین قال صد در سیم رحمت الله عليه حال لا حدیث و نعرف. این رحمت الله علی مبنی نیست بر اینکه سیم قبل از اعام سجات فوت کرده باشه. چون بعضی از شواهد نشون بده که بعد از امام سجاده میگم دیگه بارد آبا این بحث باشیم خیلی طولانی بحث یه جلسه هم میشه چند این جلسه میخواد این دیگه را بدش این بحث در کتاب نجاشی و کان عبیدالله حلوی کبیرها هم حلوی ها اینا چند تا هست محمد هست عبیدالله هست که از بزرگانش اینا حلوی نیستن کوفی هستن اساسا کوفی هستن. چون تاجر روغن بودن به حلب شام همین کنال هست می رفتن اینا حلبی بخشن و سن نفل کتاب المنصوب الی سن نفل این معنا که ظاهرن در میان اصحاب ما رسما اولین کسی که کتاب رو به سابسا تصنیف بوده ایشانه المنصوب از کردن یکی از این معاصی نوش منصوب بنداش نیه که نجاشیم خواهد این کتاب جعلیه منصوب یعنی کتاب موجوعه مجعوله این مورد از نسبت در اینجا به معنای قرفیه چون در اون زمان متعارف بوده مثلا کتاب الحلبی یه کتاب رو مراد از نسبت به نحوه اضافه نه یا انکیال کرسی زاد دول نشرب کتاب الحلبی مرحوم نجوشی مخواد بگه هر وقتی این کتاب الحلبی مراد کتاب عبید اللهه نه محمد و نه یحیاب اونا هم اما کتاب... استادمون توی این رسوایی سید مرتضی سوالی به سید مرتضی نیم که هر کتاب کلی نیست ایمان هم کتاب الهی اسی استلام هودند از کتاب الهی این المنصوب نسبیلی مراد به این معناست میگم بعضی ماسین واداشن اصلا این کتاب جعلی است و این کتاب آحادی زری است و, و عرضه و عرزو علاوی عبدالله علیه السلام و شهرو آله اندبرایتی اترالها اولا مثل هاذا آیا اهل سنتر همچی کتابی مصنفی داره راست هم هست این زمانی که این کتاب عرضه شده هنوز موطع مالک نوشته نشده اولین مصنفی که سنیا دارن تبقه روارد موطع مالک 150 بعد از شهادت امام صادقه راست هم هست حضرت میگه سنیا کتابی ندارن؟ راست این مطلب درسته بیا حال به این مطلب هم بخاره الان شهردین طولانیست جاش اینجا نیست این وقتیه حدیث آخریش را مرحوم سید علی منطاوت در و سائل حدث ابو محمد هارون موسى رحمه الله عليه ایشون کله اکبری است که از اجلای اصحابه قال حدثنا ابو علی اشعری و کان قائدا من القوات ابو علی اشعری معروف که قائده شینده نشینجا یعنی سرلشکر بوده مثلا رشکری بوده ارتشی بوده علایها نه ابو علی اشعری که احمد بن عزی بسیار مشهوره عن سعد بن عبدالله اشعری قال عرضه احمد بن عبد الله بن خانوه کتابه او محمد این احمد بن عبد الله کتابش احتمالا زیبنای فخر رضا اینه احتمال قوی داره حالا جاش ليشرهش اینجوریه آوین بعد خیلی باز مراجعه بکنن اینم با ilmu یوح فرما پیدا شده احتمالا احمد بن عبد الله کتاب خانوه کتابه او علام مولانا محمد، علا ابن علی محمد علی حسن بن علی بن محمد صاحب الاسکر فقرا به قال صحیح هون سا به این کل روایات این باب تمام شد این طایفه تمام شد کل روایاتی که ارجاع به اشخاص داده شده گفتم طایفه طایفه از این طایفه روایاتی است که ارجاع به اصحابه ما الله علیه